داستان های صوتی به مدیریت آقای محمد جواد بوستانی خانش توسط بنفشه این داستان نیلوفر آبی روی تپهی که ارتفاعش به صد متر می رسید یه معبد قدیمی جلب توجه می کرد یه پیر مرد خمید قامتی توی این معبد مراسم مذهبی هندو انجام می‌داد. یوشا و لالیتا دو تا دوست خوب بودند که از هم صحبتی با راهب مهربون لذت می بردن و بهش کمک می‌کردند تا معبد رو با گلهای رنگارنگ تزین کنه خیلی وقتا یوشا و لالیتا صبح از تپه بالا می و بین بوتهای گل می و بالا پایین می و آواز می خوندن و قایه موشک بازی می کردن. کبوتری که از خواب بیدار شده بود خوابالود بغبغو می کرد که چقدر اینا پرسر و صدا هستند. سنجابی که اون نزدیکی ها جستاخیز می کرد دوم پشمالوش تکون می داد و می گفت اینا چطور جرات میکنند اینجا قایم با شک بازی کنن؟ پرنده با پرای زرد روشن از بالای سرشون پرواز کنان میگذشت و با آواز میگفت دختران ابله رنگ دامنتون هم رنگ پرای منه، یعنی دارید سر به سرم میذارید؟ اما گل‌های رنگارنگ صورتی، آبی، زرد، بنفش که به یک خط در کنار جاده روییده بودند با وزش نسیم مثل موجی به آهستگی در حرکت بودند. اونا زمزمه می‌کردند: لالیتا، یوشا، ما کاملا باز شدیم. ما رو بچینید و با ما معبد رو تزیین کنید. یوشا و لالیتا با خوشحالی و با ترسوندن پروانه هایی که روی گلا در پرواز بودند گلا رو می چیدن و برای راه به پیر می بردند. پیرمرد که چشمش ضعیف بود گلها رو بو میکرد و اسم هر گل رو به درستی حدث می زد. او به دخترا میگفت: شما گل یاس آوردین؟ خیلی خوب خیلی خوب خداوند به شما پاک دامنی می بخشه یا مثلا میگفت پس اینطور گلای امروز روز هستند خداوند به شما عشق و صلح عطا یه روز بعد از ظهر یوشا از راهب پرسید اگه من یه گل نیلوفر به معبد هدیه کنم چه اتفاقی می‌افته راهب جواب داد نیلوفر این گل ملکه ی تمام گل هاست نیلوفر هوشیاری خداونده اگه تو نیلوفر هدیه کنی به خدا نزدیکتر میشی و بهترین بنده ها خواهی بود یوشا با شادمانی بالا پایین پرید لالیتا که با تعجب بهش نگاه میکرد پرسید تو از کجا میتونی نیلوفر آبی پیدا کنی؟ یوشا با خنده مرموزی از پاسخ دادن تفره رفت یکم ناز کرد و بعد با بیمیلی گفت آبگیر قدیمی اون طرف کوهستان یادته؟ اونجا یه گنچه یه نیلو فر دیدم که باید امشب کاملا باز شده باشه صبح خیلی زود میرم اونجا و اونو میچینم و میارم به معبد لالیتا با اعتراض گفت اما اون آبگیر مال پدر منه یوشا قبلا به این موضوع فکر نکرده بود اما نمیخواست تسلیم بشه گفت شاید اما هیچکس تا به حال اونجا نرفته گل شکفته میشه و بدون اینکه کسی بهش توجه کنه پژمرده میشه من اونو دیدم پس حق دارم که بچینمش اما چطوری؟ آبگیر مال پدر منه ؟ خب باشه اما این فقط منم که حق چیدن اون گل رو دارم دو دوست بدون هیچ لبخندی توی اون بعد از ظهر همان روز از هم جدا شدند روز بعد درست موقع طلوع آفتاب یوشا به آبگیر رسید. او از وقتی که آسمون خاکستری داشت کم کم به رنگ نارنجی ملایم درمیومد. تمام راه رو دویده بود و وقتی آبگیر رو از دور دید، قلبش پر از شادی شد و دلش به حال دوستش لالیتای بیچاره سوخت. اما ناگهان قلبش از تپیدن وایساد. در روشنایی محالود طلوع آفتاب کسی رو دید که از سمت آبگیر بالا میاد. بله اون لالیتا بود که اون گل نیلوفر آبی رو در دست داشت. یوشا پشت یه تپه پنهان شد. لالیتا به سرعت از تپه بالا اومد. یوشا پشت درختا دوست خودش رو تعقییب کرد و به تلخی به این خیانت دوستش فکر کرد. لالیتا جلوی راهب ایستاد که تازه از چشم بیرون اومده بود و آماده انجام مراسم مذهبی بود. پیرمرد پرسید، تو کی هستی؟ من یه نیلوفر آبی آوردم. نیلوفر آبی؟ شگفتنگیزه. معبد با این گل خیلی قشنگ میشه. تو یوشا هستی اینطور نیست؟ خیلی متاسفم نمیتونم تو رو خوب ببینم ولی اغلب یوشا و لالیتا رو با هم اشتباه میگیرم. تا هیچ جوابی نداد یوشا که خودشو قایم کرده بود و یه بهشون نگاه میکرد بیشتر از این نتونست خودشو کنترل کنه و اشکاش سرازیر شدند. ناگهان لالیتا جواب داد بله بله من یوشا هستم یوشا از مخفیگاه خودش فریاد زد نه جناب راهب این لالیتاست که گلو آورده لالیتا گفت اما این تو بودی که محل گل رو کشف کردی من فقط اونو چیدم با گفتن این جمله عشقای لالیتا روی گناهش چکید یوشا جواب داد نه گل نیلوفر متعلق به خانواده شماست حالا اشکای اوام روی گونه هاش سر میخوردن خب که چی؟ که این گل مال توه و فقط تو میتونی اونو بچینی در همین موقع راهب وارد بحث شد و گفت مهم نیست. این گل مال هر دوی شماست و شما هر دو پیش خداوند عزیز خواهید بود و هر دوی شما انسانهای خوبی هستید. موقع برگشتن از معبد یوشا و لالیتا با لبخند به هم نگاه می کردند. اونا احساس می کردن که انسانهای خوب و شریفی شدند. پس مثل همیشه جست و خیز کردن و رقصیدند. این بارم کبوترها، مثل قبل از خواب بیدار شدن و خواب آلود بغبغو کردن و از اینکه اون دو دختر با سر و صداشون خوابشون رو آشفته کرده بودند کلی غرغر کردند امیدوارم از شنیدن این داستان لذت برده باشید کانال تلگرامی هزار افثان داستانهای افثانه ای سوتی نشانی کانال تلگرامی تی نقطه می مهران دوستی تی نقطه ام m e -H -R -A n d نشانی وبلاگ ما m e h r a n d o u -S t i نقطه -E b نقطه -E مهران دوستی dotblockfall.com کانال تلگرامی هزار افسان به مدیریت محمد جواد دوستانی